پاسله 28ام خواهرمان و شوهرش پس از رسیدن نیروهای جمهوری خواه گریختند تا به دست آنها نافتند شور و شوقی مانند آن روز انگورچینی مردم امبروسا را فرا گرفت یک درخت آزادی افراشتان که این بار به الگوی فرانسوی نزدیکتر بود همانند تیر بلندی بود که در جشن ها برپا میکردند و خوراکی های بسیار از آن میآویختند. نیازی به گفتن نیست که کازیمو در جا از آن بالا رفت، ولی زود خسته شد و کنار کشید. تظاهرات کوتاهی در پیرامون کاخهای بزرگان شهر شد مردم داد میزدند. اربابها، اربابها را دار بزنیم، سعی ولی به من که برادر آن برادر بودم، کاری نداشتند. وانگهی، خانواده ما هموار خورد مالک به حساب آمده بود. حتی بعدها برخی کسان مرا میهن پرس خواندند. به همین دلیل هم پس از آنکه ورق برگشت به دردسر افتادند. اون به روزا دارای انجمن شهر شد و شهرداری را برای آن برگازیدند. برادرم نیز عضو انجمن موقت شهر شد. بسیاری کسان با گزینش او مخالف بودند چه او را دیوانه میدانستند ولی دیگران می خندیدند و میگفتند باکی نیست چون همه ما دیوانه ایم. نشست های انجامن در کاخ فرمانداری سابق برپا می شد. کزیما روی شاخه درخت خرنوبی در نزدیکی پنجره می نشست و گفتگوها را دنبال می کرد. هر بار که نظری داشت با فریاد به گوش دیگران می رسند و به همین گونه نیز در رایگیری ها شرکت می کرد. می که انقلابی ها بیش از محافظ کاران به فرمالیسم گرایش دارند. از این رو برخی کسان آن را ناخوشایند یافتند اماایه آبروریزی انجمن شهر دانستند. در نتیجه پس از آنکه جمهوری لیگوریا جای جمهوری خاندانی جنو و برپا شد، دیگر کزیما را به عضویت انجمن شهر برنگذیدند. باید گفت که در همان زمانها کوزیمو ترهی نوشته و منتشر کرده بود که این نام را داشت. پیشنویس قانون اساسی یک شهر جمهوری همراه با اعلامیه حقوق مردان، زنان، کودکان حیوانات اهلی و وحشی و نیز پرندگان، ماهیها، حشرات و گیاهان از درختان بلند گرفته تا بوته ها و سبزیها. اثر بسیار زیبایی بود که میتست راهنمای هر نوع حکومتی باشد ولی کسی آن را جدی نگرفت و به کار نبست. کزیمو هنوز بیشتر وقت خود را در جنگل میگذرند. مهندسان نظامی فرانسوی در حال کشیدن جادهی در جنگل بودند، تا توب خانه بتواند از آن بگذرد این مهندسان که همه ریشهایی بسیار بلند داشتند، به دیگر سپاهیان نمیمانستند دست کم مانند دیگر سپاهیان نبودند که از هر کجا که می ویرانی و یا سامانی به جا کاری ماندنی میکردند و خواستشان این بود که آن را هرچه بهتر انجام دهند. از این گذشته چه داستانها که تعریف نمیکردند. اسیار سرزمین ها را دیده بودند و جنگ های بیشماری را تجربه کرده بودند. برخیشان حتی رویدادهای تاریخی پاریس، فتح باستی و گیوتین را دیده بودند. کوزیمو سراسر شب را به شنیدن داستانهایشان می‌گذراند. شب که میشد شد، بیل و کلنگ خود را به گوشهی می‌گذاشتند. گرد آتشی می پیپ می‌کشیدند و خاطرات خود را بازگو می روزها کازی شناسایی جنگل به آنان کمک می کرد. بهتر از هر کسی مشخصات محل را می شناخت و راه هایش بسیار پر ارزش بود. با این همه بیش از آن که به نیازهای طوبخانی فرانسه بیاندیشد به منافع مردم نظر داشت که تا آن زمان دارای هیچ جادهی نبودند. با خود می گفت از گذران مرغ دزدان بیگانه میتوان دست کم ای گرفت و به هزینه آنان ای برای مردم کشید. همان جاده هم قنیمت بود. زیرا مردم دیگر تا به تحمل نیروهای اشغالگر را نداشتند. به ویژه از زمانی که دیگر جمهوری خواه نبودند و ارتش امپراتوری فرانسه شده بودند. در اون بسیاری کسان برای خالی کردن دق دل خود به سراغ میهن پرستان میرفتند. و با لحن نیشداری میگفتند میبینید رفقایتان دارند کار میکنند و آنان آهی میکشیدند و در پاسخشان میگفتند چه میشود کرد، سربازند مثل همه سربازهای دیگر امیدواریم که این وضع هرچه زود تر پایان بگیرد سربازان ناپلئون به آخرهای مردم میرفتند گوسفندان و گاوها و حتی بزهایشان را به زور میگرفتند تراج و باج بسیار بیشتر از پیش شده بود. از این بدتر سربازگیری هم می کردند. در ناهیه ماهیچ کس به سربازی تن نداد. جوانها ترجیح می دادند، به جنگل بزنند و به خدمت نروند. کزیمو هرچه می توانست می کرد تا از این دشواری ها بکاهد. از گله هایی که مردم به جنگل می فرستادند، تا از دسترس سربازان دور بماند نگهداری می کرد. هنگام انتقال پنهانی گندم یا زیتونی که مردم جابجا میکردند تا به دست مأموران ناپل اون نیفتد وظیفه پاسداری را به عهده می گرفت به جوانان از سربازی گریخته نشان میداد که در کجاها پنهان شوند خلاصه اینکه از هر راهی میکوشید از مردم در برابر ستمگری دفاع کند ولی هیچگاه به نیروهای فرانسوی حمله نکرد گرچه از همان زمان دسته های مسلحی در جنگل پدید آمده بودند و در گوش و کنار به فرانسوی ها شبیخون می زدند کوزیمو با یک دندگی ویژه خودش همچنان به برخی چیزها پایبند بود از آنجا که در آغاز فرانسوی ها را دوست خود دانسته بود نمی پذیرفت که با آنان ستیزه کند هرچند که وضع بسیار دگرگون شده بود و امیدهای بسیاری به نومیدی میگرایید از این گذشته باید گفت که رفته رفته پیر می و دیگر نمی خواست خود را به درد سر بیاندازد. ناپل اون به میلان رفت و تاج گذاری کرد. سپس به سفری به گوش و کنار ایتالیا پرداخت. در هر شهری جشنهای بزرگی به افتخارش برپا می شد. او را به دیدن بناهای تاریخی و جاهای دیدنی می بردند. در اون به از برنامه هایش بازدید از میهن پرست درخت نشین بود. همان گونه که اغلب پیش می آید، هم شهریان دیگر چندان توجهی به او نداشتند. ولی آوازش در همه جا به ویژه خارج پیچیده بود. آن باز دید نیز با تشریفات ویژهایی همراه بود. کمیته ی جشن شهرداری آمروزا آن را به گونه ای تدارک دیده بود که مایه آبروی شهر باشد. درخت زیبایی را برگزیدند. بیشتر دلش می خواست باشد. ولی درختی که از همه بهتر به چشم آمد و جای بهتری داشت، گردو بود. از این رو آن را با های بلوط آراستند و نوارها و حلقههایی به رنگ پرچم‌های فرانسه و لومباردی و نیز های رنگارنگی از آن آویختند. از برادرم خواهش کردند لباس مرتبی به تن کند و بالای آن درخت بنشیند. البته از او خواسته شد که همان کلاه معروف پوست گربه را به سر داشته باشد و سنجابی را روی شانهش بنشاند. برنامه بازدید را برای ساعت ده تدارک دیده بودند. جمعیت انبوهی پیرامون درخت گرد آمده بود. نیازی به گفتن ندارد که ناپلئون بسیار دیرتر در ساعت یازده و نیم آمد و این به ویژه برای برادرم دردناک بود که به خاطر پیری و سستی مسانه مجبور بود گهگاه پشت تنه درخت پنهان شود و خود را سبک کند. امپراتور با خیلی از همراهان از راه رسید. نیمروز شده بود که سر خود را به سوی شاخه ها بلند کرد تا کازی را ببیند. به فراخوران تشریفات لازم دید چند جمله رسمی به زبان آورد. گفت به خوبی آگاه هم که شما دستش را به پیشانی برد و سایبان چشمانش کرد. آگاه هم که شما در این جنگل ها... یک گام پس رفت تا آفتاب چشمانش را نیازارد. در این جنگل های سبز و خرم ما... کوزیما به ناراحتی ناپل اون پی برد. معدبانه پرسید. حضرت امپراتور، کاری هست که بتوانم برای شما انجام بدهم؟ ناپل اون گفت. بله، بله. خواهش میکنم کمی نزدیکتر بیایید. تا آفتاب چشمم را نزند. نزدیکتر. آها همینجا خوب شد تکان نخورید آنگاه ساکت شد و به فکر فرو رفت انگار چیزی به یادش آمده بود سپس رو به اوژن نایب سلطنت ایتالیا کرد و گفت به نظر میرسد که عین این صحنه را جای دیگری هم دیدم کازیمو گفت شما نبودید اعلی حضرت اسکندر کبیر بود ناپلئون گفت درست است درست است دیدار اسکندر با دیوژن. نایب و سلطنه گفت: حضرت همه نوشته های پلوتارک را به خاطر دارند. کوزیمو گفت: ولی در آن دیدار اسکندر بود که از دیوژن پرسید که چه کاری میتواند برایش انجام بدهد و دیوژن در جواب از او خواست که از جلوی آفتاب کنار برود. ناپلئون ناگهان انگشتانش را به هم زد. گویی جمله مناسبی را که از مدتی پیش جستجو می‌کرد سرانجام بود. نگاهی به همراهان خود انداخت تا مطمئن شود که همه گوش می دهند. آنگاه به ایتالیایی فسیح گفت اگر امپراتور ناپلئون نبودم دلم می خواست و باشم. این را گفت و برگشت و رفت. همراهانش به دنبال او رفتند و سر و صدای مهمیزهایشان بلند شد. هرچه بود همان بود. می انتظار داشت که تا پایان همان هفته کزیما نشان لژیون دونور را دریافت کند ولی خبری نشد. شاید خود برادرم به این چیزها اعتنایی نداشت ولی خانواده ما را خوشحال می کرد. Thank you.